بسم الله الرحمن الرحیم کرسی تربیتی حکومانی از منظر امام خامنه‌ای پنجشنبه 13 بهمن 1401 اوه ای عزیز محمد فهمید بسم الله الرحمن الرحیم از سلام و عدوه احترام دارم خدمت و اتمن توفیقی شد در ایام الله دهی فجر تبدیل که از میکنم ایام الله خدمت برادران عزیزم با سلسل کرسی های علمی ترویجی دیگری در خدمت بزرگواران باشیم با موضوع حجمانی از منظر مخاملی متزلالالی و توفیقی که الحمدلله این موضوعم با ایام سنخیت داره خدا رو شاکریم توفیقی پیدا کردیم برای دیگه تو این ایام در عطبا بحث انقلاب اسلامی و عقادش به برسی بشین به یک بیان مسئلهی داشت باشن خدمت عزیزان و در اترامه در خدمت برادران عزیزمون راه دهندگان محترم حجادل اسلام و مظاهری عزیز و خوزه در اسلام بچوغزاده خواهیم بوده اینشاءالله امان ارائه دهندگان و بعد از ارائه اینشاءالله در خدمت ناقض بزرگوار استاد عزیز خوزه در اسلام دکتر گرامی پور عزیز خواهیم بود از اساطید فتوه عالی حوزه علمی قب خوزهگاران مستحضر هستن عبارت واژه حکمانی که معادلش گاورننس تعدیف میشه در زبان فارسی. و تقریبا در اواخر دهه 80 میلادی هستش که ما مشاهده می‌کنیم وارد ادبیات توسعه میشه و وارد ساختار حکومتی ادبیات بین‌الملل میشه و برای خودش سازمان‌ها و گروهایی را تعریف می‌کنه به عنوان زینف و حکمایی رو حاصل تعامل و ارتباط متقابل دولت و کنشگران جامعه مدنی تعریف می‌کنه و برای این قضیه تو اواخر دهی هشتاد مشاهده میکنیم که میگارهای ارائه میشه در جهت تبیین بیشتر این مفهوم و در ادامه با ادبیات های مختلفی پیشرفت میکنه تحت حکمانی حکمانی سالمی حکمرانی متعالی و حکمانی خوب و بعد مختلف و انقلاب اسلامی هم به عنوان یک پدیده و به عنوان یک ای که در حال گسترش تفکر خودش در این جنگ تمدنی هسته و در این ادبیات سیاسی هم ورود کرد این ادبه کلمه به جمهوری اسلامی و برای خودش هم باید تولید ادبیات داشته باشه همین جد رحبر و همین جهت رهبر معظم انقلاب با اگر گردشگران در سال 98 در مبحث پیامبر بودند که به این مطلب اشاره داشتند و پرداختند توی که فقط BC 1299 بود که حضرت داوود اونجا یک اشاره و تعریفی برای اولین بار روی این واجد زدم و فرمودن که همه انبیا در این جهت حضور پیدا کردن که یک نظام سیاسی رو ایجاد کنن حالا این نظام سیاسی رو بعضی از انبیا توفیقش رو و و ها نه حالا این حج از طرف کجا میاد از طرف خدا که حکم الله هستش کتاب هستش و پیاده کننده هم نبی هستش و, و همین جهت این ادبیاتی هستش که از آقا هم در این چند ساله به اشاره داشتند و جا داره ما هم به عنوان فعالین عرصه فقه سیاسی و فقه نظام به این عرصه بیشتر توجه داشته باشیم تا بتونیم ادبیاتی که متناسب هستش و شاخصها و الگوهایی که نیازمند هستش در انقلاب اسلامی با اون شاخص ها و سنجه ها ما در این فضای تمدنی جلو بریم و به عنوان الگو شاخص در عرصه بینون ملن ترخ بشه به پردازی میشه من اطالعی کلام کردم از خواهی میکنم سران پیش از این وقت عزیزان رو نگیرم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر مزایدی هستیم اگر ممنوع باشه در حد استقیقه دقیقه ارهای بحث بفرمایید بعد از شما میشه الله در خدمت بردر از اون ای باید جتلیستان وید موسیقی بسرده خواهیم بود که یک جمبدی بشد و انشالله در خدمت استاد گرامی آی دکتر گرامی کل خواهیم بودی شد. آی مزایی بفرم. خیلی منون از بیراتی که داشتید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللله رب العالمین. و سلل الله علی محمد و علی تاهرین. ما سلل الله علی محمد و علی محمد. اندام همین ایام به خدمت همین بزرگواران هم حاضر در اینجا هم توی غذای مجازی تبریک میگم ان که هممون بتونیم از این ایام بهره لازم و کافی رو ببریم و خداوند همین فعالیت های علمی رو ان در زمره اعمال مقبول مأرجاب قرار بده در مورد بحث حکمرانی خب همونجور که جناب یادرزی فرمودند یک در واقع نگاه هست که مثلا ترجمه ترجمه گاورننسه یعنی از اونجاست که این اومده و تبدیل شده است به مسئله حکمرانی ما با همچین مسائلی از خصوصا بعد از مشروطه متعددن مواجه بودیم که مفاهیمی از غرب میاد حالا ما میخواییم ببینیم که منظر از اسلام داره بهش از چه منظری نگاه میکنه و بخواییم این رو درک کنیم ما دو مدل مواجهه با این مساله داشتیم یه مدل مواجهه این بود که نیومدیم مفهوم رو پیش فرض می گرفتیم و شروع می‌کردیم ببینیم در مورد آن مفهوم اسلام چه میگوید. مثل مفهومی مثل بیمه مثلا که ما دیگه نیومدیم یه مفهوم جدیدی ایجاد بکنیم. اون رو پیش فرض گرفتیم. مفهوم مثل بیمه. خدمت شما عرض بشه که یک منظر دیگه هست که مثلا مفاهیمی مثل توسعه که از غرب وارد میشه ما میانیم در واقع با الهام گرفتن از اون یا مثلا مثل مفهوم مثل رشنادیسم عقل گرایی که میاد کیوبسور و تلالو پیدا میکنه اینها ما میایم نه یک نظام جدیدی الهامی میگیریم نه که اصلا الهام نگیریم ولی خب یک ساختمان جدیدی بنا کنی مثل مفهوم پیشرفت در کنار توسعه مطرح میشه توی حکمرانی و نگاه کنیم ببینیم که ما کدوم یکی از های کدوم یکی از این دو تا رفتار رو داره اسلامی از خودش نشون میده خب متعددن و متخاوتن ممکنه که متفکرین مختلفی رفتان های از خودشون نشون بده. منطقه اون چیزی که موضوع کرسی ما هست و لطف خدا هم هست که ما بریم از منظر حضرت آقا به مسئله نگاه میکنیم این هست که به نظر رسه نوع مواجهه مقام معذب رهبری دومی هست این در واقع یک بنای جدیدی که متناسبه با مخواهیم و اون در واقع معرفت اسلامی اختزا داره بنا کند ساختمانی بنا کند به نام حکرانی که پشتوانش اش بعد قرآنی باشه دینی باشه پشتوانه اش بعد اسلام باشه نه این که توی اون یکی مزنه. نه کل بنا در واقع از اسلام بیاد بالا لازم ممکنه ما اصلا نوع حکرانی که بریم تعریف میکنیم اینجا با آنچه که در غرب تحت عنوان حکرانی مثلا فهمیده میشه شاید مثلا با یک سری نگاه ها باشن شاید حتی یه اون خصوص منچ باشن و شاید اشتراکاتی پیدا کنند ولی این اشتراکات و یا مثلا این نزدیکی هایی که به هم پیدا می کنند از باب نزدیکی شاید مثلا مردم صاد دینی با دموکراسیه ولی خب آنچه که مفهومشونه روحشونه کاملا دوتاست و دوتا دنیای متفاوت رو تر می میکن. پس برای مقدمه آنچه که توی بحث حکرنی در واقع از نگاه ازاتاق و تجر داشت که کشتبانه این حککرنی رو قرآن میدونن و لذا ما توی گامنفل به نظر میرسه که یک نگاهی به خود قرآن باید بکنیم که اصلا خود بحث و حکم رو چه نگاهی بهش داره اصلا حکم در قرآن تو چه معنا و تو چه اه, کانتکسی کار به کار رفته و داره میره جلو خب این هم یه اه, خودش پجورش خواستی شده صورت گرفت و ها و به این رسیدیم که اه, اصلا بعضی از شروعی که حاکم دارد و یا حتی از نگاه اسلامی و بحث هایی که از امام و یا مقام معظم رهبری در مورد حکومت و حکمرانی کردن اختزاعات اصلا خود حکم هستن اون فضای حکم و حکومت و وقتی ما درک میکنیم یه سری اختزاعات داره مثلا اینکه باید حتما عادلانه باشد اصلا هر من حکمرانی رو ما نمیتونیم بگیم آقا این حکمرانی یعنی ب... ب... ب... ب... از جهت قرآنی دارم میگم یعنی یک بار معنایی عادلانی توش هست یا یعنی اینکه حاصل کار ساخت درونیه یعنی ساخت درونی وقتی محکم بشود این ساخت درونی باعث میشود که اهداف خود آن حکومت اجرا بشود و همچنین مانع از ورود عقیار و یا نفوذ و یا آسیب ها میشه یعنی همین حکمراندن اسلامی و حکمراندن قرآنی این ها اصلا اقتضاعات معنای حکران در قرآن. قرآنه لذا اینها خابیده یعنی به هر نوع اجرایی به هر نوع حرکتی که با هر نوع روی کردی روشی یا روحی یا هدفی انجام بشه ما نمیتونیم بگیم حکرانی اسلامی یا حکرانی از نگاه فقیه بلکه آنچه که اقتضاع دارد در قرآن این هست حتما باید توش معنای عدالت خابیده باشه ساختار منظم و در و این استحکام ساخت درونی اقتضا بکنه مانع بودن از اغیار رو از نفوذ رو از فساد رو از انحراف رو اینها با اون ساخت خودش باید می رو اقتضا بکنه این همون معنایه که توی بحث حوک و حکمرانی در قرآن خویده از, از،, از منظر معناشناسی منتها وقتی که میخوایم بیایم در مورد خود این حکمرانی وقتی می‌خوام یه پله بیایم جلو و صحبت کنیم ما باید اینو بفهمیم که داریم تو یک نظام سیاسی امت امامت تأسیس تسیص بکنیم خود این نظام امت و امامت یه اقضی دارد، یه سری اصول دارد یه سری ارزش ها بر شاکم است به یک سری چیزها معنا میدهد و متفاوت است از سایر نظام های سیاسی و اصلا یک حاویت جدیده یک ماهیت جدید این نظام امت و امامت و یه روابط ایجاد می بین کارگزاران یا حکمرانان یا حتی اونسان می توی سیستم آملی رو عوامد با که... که این رابطه غیر از رابطه صرفا سیاسی و یا صرفا حاکمیتی به معنای مثلا اعمال حاکمیت هست این غیر از اونه که یک رابطه دوطرفه برای تعالی هست که این رابطه ایجاد می کند تعالی رو این رابطه روح دارد این رابطه ایجاد وحدت می ایجاد محبت می این اختزاراتی که دارد با در نظر گرفتن این روابط ما باید بریم توی مفهوم و حکرانی از نگاه مقام معظم رهبر. اگه اگر این رو نبینیم در واقع ما ممکنه بسیر قواهد و فرایندهای توی حکرانی برسیم که ظاهرا اسلامیه ولی اون مفاهیم نا اون روح اسلام یا اون در واقع معارف عمیق اسلامی درش اشراب نشده به این معنی. بعد از اینکه این رو تصور کردیم در نظر گرفتیم که این فهم در واقع نظام اممت و, و امامت و تونستیم توی مراحل مختلف توی بزنگاه های خوصاً انقلاب اسلامی و یا حرکت کلا اسلام شیعی تونسته این رابطه بین امام و اممت یا نظام امام و اممتی بیاد نجات بده در واقع حرکت شیعه رو و خوصاً توی بازی انقلاب اسلامی تواسیب امام خمینی و از آقا پیشرفته وقتی که ما میفهمیم که یعنی اینو که اینو که درک کردیم این یک فهمی فهم کارسازی از معرفت دینی و به صورت عملیاتی در ابعاد کلان عملیاتی شده و یه سری جوارم پاسوخای داده مثلا توی خصوصا اون جاهایی که ما دو چالش شدیم توی حرکت انقلابی یا هایی داشتیم یا جنگی داشتیم یا نقاط خاصی بوده میبینیم که این رابطه عمده خودش رو نشون داده عمده اثر بوده کارساز بوده خود مفاهیمی که توی انقلاب اسلامی تولید میشه توسط امام خمیلی و میاد جلو مثل آزادی، استقلال، معنویت، برابری، ادالت اینا میاد کارساز عملیاتی میشه. یعنی نگاه ما اینجا به دین و اون چیزی که میخوایم ازش پله پله برداشت بکنیم مسائل حکمرانی رو این که یک نگاهیه که بر پایه نظام سیاسی امامت امامت و به دنبال فهم کارساز از دین است. خب وقتی ما با این نگاه میریم سراغ دین یعنی نمی‌ریم مثلا فرضاً وقتی توحید رو نگاه می‌کنیم می‌رسیم مفاهیم فلسفی که ایثبات کنیم خدا یکی است یا مثلا نه میام یه مقدار اینجا می‌بینیم به سمت که توحید نفی عبودیت غیر خداست یعنی با این منظر داریم کارسازیش می‌کنیم می‌آریمش تو میدان عمل عملیاتیش می‌کنیم مفاهیم کلان و بنیان دین خودمون لذا بعد از اینکه این دوتا رو توجه کردیم وارد معارف پشتیبان خدا حکرانی میشه که حکرانیه اسلامی از منظر مقام معظم من رهبری یه سری معارف و مفاهیم بنیادین و راهبردی داره که اینا رو ما سرجم اسمش رو می‌ذاریم معارف پشتیبان حکمرانی اسلامی خودمون که چیه که این مفاهیم بنیادین و راهبردی میاد شکل میدهت آینده حکمرانی ما رو یعنی باید این مفاهیم روش بحث بشه و اشراب بشه تا انتهای حکمرانی ما زنده باشه نه اینکه این مفاهیم رو بگیم بذاریم باید داریم حرف از مثلا توحید نفی عبودیت غیر خدا می زنیم توحید باید اشراب بشود در همون نظام مثلا اداری استخدامی ما در نظام عرضش گذاری معلم ما این یعنی تا اون تح باید بیاد کجا قرار داره چه شکلی میاد و ورود میکنه اون مفاهیم و معارف بنیاد که داریم اینجا حرف ازش میزنیم همون مفاهیمی که هست که مقام معظم رهبری توی مثلا مسائلی مثل مثلا همین بحث عینیت دین و سیاست خب این مسئله که میاد شکل میده از این سنخ بحث هایی که توی انقلاب اسلامی اومده و اینا معنای جوهری پیدا کردن ما همه در واقع عینیت دین و سیاست یا مسئله, مسئله علم دینی دین و عید. و اینا اومده و بالا اومده یواشاش معنی پیدا کرده مفاهیم و معارف و مفاهیم راه بردی مثلا مثل مفهوم مقاومت که یک راه برد خیلی کلانی هست که توی این چهل ساله حرکت انقلاب اسلامی اومده هی اشراب شده توی بازه های مختلف مثلا توی جنگ میشه مقامت دفاع. دفاعی میاد جلوتر میشه مقامت فرهنگی میاد جلوتر میشه مقاومت سیاسی میاد جلوتر میشه مقاومت بحث مقاومت فرهنگی مقاومت سیاسی و الان هم که در دوران مقاومت اقتصادی هستیم این یک راهبرد کلانی داره معارف مفاهیم در امتداد همین معارف بنیادی و راهبردی از اینها ما می‌رسیم به سری معارف مفاهیم کاربردی که بیا در میدان عمل به ما کاربرد بدهد یعنی یواش یواش ما رو نزدیک کند به میدان عمل که از این مثلا بخوام مثال بزنم که این معارف کارآمد و کاربودی همون مثلا راهبرد مقاومت میاد میشوه تبدیل میشوه به اقتصاد مقاومتی وقتی این کلان به پله پله اومدیم پایین تبدیل شد به راهبرد مثلا مقاومت بعد میاد توی اقتصاد مقاومتی بعد تبدیل میشوه به سیاست‌های کلان یعنی یه پل نمیاد تر حالا از اینجا به بعد که این سیاست کلان در واقع از از صادر می شود و موظف به اجراهی پله پله این نظام هکرانی باید بیاد و اونو تبدیل بکنند به در اون فرایند هکرانی خودش که اینشالله از آیه موسوخزاده استفاده خواهیم کرد خیلی ممنونم از وقتی که به بنده بردید یه محمد. ممنونم تشکر می برای رجمند حجات خیستان دکتر نظرهی استفاده کردیم تشکرات برای مفید و مختصری که داشتید به صورت کلی، اگر در چند جمله بیانات عزیزمونو جنبندی کنم و تقدیری داشته باشم اونم این که ایشون اشاره به یه تاریخچه تقابل اصطلاحاً جریان اسلام سیاسی و کار داشتن که از این تقابل به صورت جدی در کشور ما و از زمان مشخصی صورت میشه و نحوه مواجهه ما با این درب رو که بالبا همین دو تا دیدگاه هستش که یک دسک راه هست که غالبا پذیرنده ای این مفاهیم هستش و میراث در این فسوری نقش افشادی نمی کنه و اون فضا رو تکمیلی کننده هستش و حالت دوم که نه ما از این مفاهیم باید الهام بگیریم و بر مبنای اندیشه فکری خود ما و استان ما حالا یک جاهایی شاید در ظاهر شاید در ظاهر اون سری جاهای اشتراکاتی باشد خطرش هیچ کار ولی خب قطعی یک نقطه توانایی متفاوتی خواهیم داشت یک نقطه موقتی می‌ندازیم مسائل مختلف از این جهت هم اشاره داشتند برادران برادر, برادر عزیز اشاره داشتند که ما باید با این دیدگاه دوم اسلامی بریم بپردازیم و محکومه و روح خاکم بر این رو از منظر عزت آقا باید احساب بشی کلمه حکم و به همین جد مراجعه کردنم به معنای حکم در قرآن که ببینن حکم در قرآن به چه معانی است که به معانی از آن اشاره داشتن و برای ارائه این رابطه کارساز ارائه رابطه کارساز دارن که نظام ما را که اشاره داشتند دو تا شاخصه اصلی داره یک نظام مبتنی و رابطه امت و ولایت هسته و رابطه بعدی که داشتن چون در اینجا دین نقش اصلی و اساسی رو داره و نظام ارزش و اخلاق ما رو داره ترسیم میکنه و همین جهت این تعریف ما از خوکم متفاوت خواهد بود و ابعاد مختلفی خواهد داشت ما باید بریم های این قضیه و سیاست های رو از اندیشه از آقا در ببین و یک رابطه‌ای بتوانیم بین این عباد برقرار کنیم که این رو داشته باشه ممنون از قراردن از جماعی مستاهی دید از جماعی در خدمت عزیزمون بردر از جماعی سبزاده خواهیم بود به فرمی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رفت نهاالمی بنده هم عرض فرمی دارم. تبریک که تبریک گذشته که میداد آقای جواد جوال علیه مسلم و تبریک آینده که ولادت حضرت علی علیه السلام هست و این ایام ایام رجبیه انشاءالله بتونیم از برکات این ما دهره کافی میبریم و همچنین در دهه مبارک فرج قرار دادیم فیروزی انقلاب اسلامی هم تبریک ارز میکنیم حالا بنده خیلی خلاصه ارز میکنم مطالب رو که انشالله بیشتر خدمت حاجای گران باشیم در ادامه بحثایی که حتمای مظاهری فرمودن ما توی اصطباحاً ابعاد و ارکان حکرانی بعد اینکه از اون معارف پشتیبان پور کردیم و به اون ایده های اصطباح معارف کشتیبانی که راه و بنیادی بود و رسیدیم به معارف پشتیبان کار بردیم خسرانمون ایده های حکمرانی ما به شما میرفتن ما این ابعاد ارکان حکمرانی رو توی چند تا قسمت تقسیم بندی کردیم بر اساس بیانات از اتاوا یکی خود حکمران هست که حالا جای موازید اشاره کردمونه که ما حکمران رو هم داخل مفهوم حکمرانی میاریم و به خاطر اینکه خود شخص حکمران شاید توی ادبیات های غربی اینجوری نیست مثلا توی حکمرانی سازوکار تعریف میکنن سازوکارهای ایمان و قدرت ولی ما رو داخل محکوم حکمرانی همیم چرا که استران خود شخص حکمران توی نظام ولایت داره اعمال قدرت میکنه و معزون از ولی و اینکه خود این از ولی هم باز حکمرانی الهیه یعنی از خدای متعال هست و محکومی هم که از حکمرانی متعالی دارن هم تو همین راست است ما حالا در مورد حکمران یه سری نقاط بود کازا تاوا توی دیدارهای این بسنطام پط مطرح کردن ولی اون چیزی که مد نظر هست بعد از این چون راه مزایری پیدا کردن بحث الگوها و نظامات و سازوکارها و نهادها و, ها و توی حکمرانی الگوها و نظامات و سازوکارها چی هستند چون وقتی وارد ایده ها میشیم از ایده ها عبور میکنیم به ابعاد حکمرانی میرسیم یه سری چیزهایی داریم که اصطلاحا توی ابعاد حکمرانی به عنوان الگو مطرح میشن علگو هایی که مثلا علگو چیهن؟ البته همه اینها مستند از موازین دین منابع اسلامی همون معارف پشتیبان هستن ولی در لایه اجراک وارده ایده های کار کردی میشن اینها یه سری تعاریف مختلف بیدام کنن یکیش علگوه موجود از همون مطلبی که از ها فرمودن همون نقشه جامعه که به ما بگه به کدوم سمت میخوایم بریم الگو. که نمونه بارز الگو هم این همون بحث سعده الگوی پیشرفته در حضرت این بحث تدوین سند الگوی پیشرفت رو خیلی تاکید داشتن و حتی تو دیدارهای اخیر هم به این مسئله اشاره فرمودن ما یه قسمت از بوده برکران رو به الگوها برمیگردیم که خود الگوها اسلامی باشن همین سند الگوی پیشرفت هم اسلامیه یعنی باید اسلامی باشه و اسلامی اجراب شه پس منظورمون از همینی. که اصطلاحا نوعی گذاری و گذاری و تدوین نقشه حساب میشه. منظور از نظام چیه؟ این نظامات که میگیم این نظام با اون نظام اسلامی که یکی از مراحل فراینده متفاوته اون جز مراحل فراینده که میگیم نظام اسلامی خیلی مفهوم کلانتریه. ولی منظور ما, ما از نظام در اینجا همون نظام های دینیه نظام های دینی مثل نظام فرهنگی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی که اینا تو میدان های عملیاتی الان ما داریم همین مفاهیمی که از نظام پرتازی های دینی می که این نظام ما هم نظامات ما هم اسلامی باشه توی حکمرانی که در اندیشه حضرت ها و اسلامی باشه به این شکله که حکم نظام های ما نظام هم از نظام اقتصاد سیاسی و فرنگی دینیش چرا که خود حضرت فرمودن که اسلام این ادعا رو داره که ارکان یک نظام اجتماعی رو در اختیار داره میتونه بنا بکنه نظام اجتماعی هم خب وقتی کلان نظام و خورده نظام میکنیم این خورده نظام ها هر کدوم یه قسمتی دارن که گناه نظامات تر میشن برای خودشون اهدافی دارن و برای اینکه پیاده بشن به صورت اسلامی محکوم دیگری که تو بحث قسمت حکمرانی داریم بحث سخاز و کار هاست سخاز و کار ها همون فراینده های اجرایی توی پای ریزی شده باشن نظام... مثلا نظام اقتصادی پای ریزی شده نظام سیاسی پای ریزی شده داره کار میشه نظام فرهنگی چه سازوکارهای اصطلاحای سازوکارهای یا فرایندهای اجرایی برای پیاده سازی این وجود داره بهش کنیم سازوکارهای حکمانی یعنی تو بستر اجتماعی شما بتونید که این سازوکارها رو هم نوع اسلامی به پیش ببرید فرایندهای اجرایی تو یک حکمانی اسلامی این فراینده اجرایی هم بتونه اسلامی باشه و اون فراینده هایی که التقاطی غربیه نگاه ما داره و این فراینده اجرایی فرد رو ابزار در نظر میگیره و خیلی از اون نسائلی که توی مفهوم غرب نباید توی این محفایی داخل بشه و این مسئلهش هست پس یکیش هم همون ساز و کار ها بود یا همون فراینده های اجرای بود تبیلی دارن که میگن که این سازوکارها و اجرایی ما مخلوطن. یعنی از متصفان از مثلا این التقاطی توشون موجود داره که اینا باید نو بشن حالا نو شدن همین که پاک بشه از اون اطلاعات و ترکیبهای که مثلا از سازوکارهای قربی استفاده شده و همین که شاید مسائل مستخفصه ایجاد بشه یعنی یک فرایند اتفاقای پیش بیاد که شما یک فرایند اجرایی جدیدی بچینی. این هم استعای میشه فراندی اجرایی بر اساس یک نظام اصلا حضرت آقا تو دیداری که با دانشون که مشراف دارند 24 هفته نبد اونجا همین مطلب میفرمان که اگر نظامی دنبال آرمانه به آرمان ها که کوهنه نمیشه لظام ها برای این آرمان که کوهنه نمیشن بخوایم فرانده اجرایی ببریم جلو اینها با سازوکار ها و چینش ها ما چکار بکنیم نو کنیم قسمت بعدی که توی عباد و پمپرانانی محد نظر هست نهاد هاست. ما یه قسمت داریم مونا نهاد ها یه قسمت مناس ساختار ها. نهاد ها حالا دوتاش هم ما تعاریف متفاوتی دارن البته یک استطنا شاید من و باشه یک بعضی جا نهاد و بهمونان ساختارن استفاده بکنن بعض جا ولی تریفشون اجمالاً مفاوت هست اینجا باز همون نکته باز هم میاد یعنی اگر نهادها رو در نظر بگیریم یا ساختارها رو اینجا باید با همون نهادها و ساختارهای اسلامی پیش بره توی حکمرانی منظور ما از نهادسازی یا ساختارسازی چیه نهادسازی اصطلاح هست تا که ما اگر یک حرکتی داریم یک نهزتی داریم مثل نهزت همین حرکت انقلاب اسلامی حرکت بیداری اسلامی مثلا خود این نهضتی که اتفاق میفته این نهضت پیش بره باید نهاد ایجاد کنیم. نهادهایی رو ایجاد کن که این تفکر رو چیکار بکنه؟ تو جامعه القا بکنه. نهاد میتونه هم دولتی باشه غیر دولتی باشه. یعنی اعم از دولتی و غیر دولتی بیشتر تو نهادهای مردمی هم شاید مثلا تو نهادهای حسابپیام. نهادهایی که اعم از مثلا ساختارهای دولتی. و این نهادها از از تا مثلا میگن که این نهزت باید متناسب با اون حرکت خودش نهاد سازی ایجاد بکنه. یعنی هم من های متناسب ایجاد بکنه، مفهوم جدیدی داش کنه، هم نهادهای جدیدی ایجاد کنه یا نهادها رو نو کنه. نهاد نهادسازی هم همچین تعریف اجمالاً داره. ساختار ولی بیشتر معطوف به ساختارهای دولتیه. البته مفهوم ما از دولت ام از قوه مجریه است. یعنی این نقطه ای که بحث حکمرانی ما دولت دولتی می‌گیم، حتی دولت اسلامی هم که می‌گیم، عام از قوه مجری است. یعنی کلن همه کاربازارهای که خود حضرتها میان که بندن موضوع دولت اسلامی هم خودشون دولت هست من از ساختار توی نهادهای های ساختار توی حکم را این اونه که ساختارهای تکلید دستگاه دولتی ساختارهای دولتی که حضرتها توی دیداری میفرمن که این ساختارهای ما هم باید اصلاح بشه این ساختارهای ما هم باید اصلا تغییر پیدا کنه. دیگرگون بشه می‌فرمایین که تغییراتی که تو ساخت عمومی تشکیلات دستگاه و دولت داده میشه اینا یه سری کارهای اساسی باید روش اتفاق بیابته، اصلاح هم بشه که اینا یه سری افراد بیان، در جهت سلاح اینا رو چکار کنن، به طور تغییر برن دگر می‌کنن می‌شه ساختار، مثل ساختارهای آکمیاتی که هست، مثلا ساختارهای سیستم اجرای دولت ساختارهایی که مثلا خودت دو... مثلا توی مثلا مجلس هست حالا گفتیم دولت عامه مجلس و قوه مجریه اینها به نوعی یکی از ابعاد و ابعاد حکمرانی که باید اسلامی باشه تو م... م... اندیشه است و از طرفی هم یکی از ابعاد هم حکمران هست حکمران میاد این کارا رو انجام میده تو همین ساختار اسلامی کمک می‌کنه، تو نهاد سازی کار می‌کنه، خود نهاد اسلامی فعالیت رو تلاش می‌کنه یا اینکه الگو ایجاد می‌کنه و یا اینکه تو همون الگو رو پیاده می‌کنه اینا خب حکومتی نقش فعالیت رو داره این‌ها بحث‌های فعالیتش باشه، حکومان اصلا فعالیت این کارها رو هم داره در جنب‌بندی عرایز بنده آخرستان اینه که ما باید تلاش کنیم این مفهوم حکمرانی رو از اندیشه از آقا که اندیشه از تاها در امتدا اندیشه از امام و اسلام هست این مفهوم رو کامل بفهمیم با ادعاش و انجیزش و این رو سعی کنیم ببریم به سمت اسلام شدن حالا اینکه با همکاری دستگاه دولتی تا تولید فکر بشه یا چه سازوکارهایی باشه که اینها اصطلاحا کارای کارهای خودش بعضی ها متولیش دولت بعضی متولی حوزه علمی است حالا متولی دانشگاه هست. که انشاءالا بتونی حرکت انقلاب اسلامی به اون سرمنزد مخصودش هم برسه یه نقطه آخرم هم عرض بکنیم که چون یه حرکت حرکت انقلاب اسلامی داره فرایند فرایند پنج مرحله و محصد دولت اسلامی این ها هم هست این بحث چیزی جدای از اون نیست چون فقط بح اونجا یک سری بحث در مورد هست در مورد اندیشه پرایند تنباق اتاق انقلابستان میتونن که در جای خودش باید بحث بشه. ببخشید بخشیت بنده خواستان خلاصه ارز کنم که بیشتر استفاده کنید یه را که تون بحث شخص حکران که یک محل نظاه هست بگم این که از این حیث ما حکران رو جزو حکرانی در نظر میگیریم که توی بحث نظام اومت و امام شخص حکومتی، شخص کارگزار صرفاً مجری نیست، صرفاً جزی از چرخنده اجرایی نیست. توی نظام بروکراتیک یک مثلا شخص مجری یک انسان مرده که یک رو بهش بدیم از اون بر خروجی بگیره توی یک کارخونه نیست، بلکه دارای نقش است، دارای روح است، دارای وحدت است. باید متعالی بشود توی همین حرکت و عمل کردش. میاد و ممکنه حتی یک فردی با ویژگی های اخلاقی مثلا داشته با, با, با نگرش معنوی مثلا هم مثل توی بحث اوکرنی استانال میاد و یک فضای جدیدی ایجاد میکنن نسبت به اینکه یه نق فقط صرف بهش نگاه بکن یعنی شخص حکمان برای ما اینجا از چند هیز جزء به یکی که جایگاه معنوی و اون نگرش معنوی شخص حکران میاد و تاثیر میذاد در این اینکه چقدر ما اون فرایندهای اجراییمون به عمل برسه و نزدیک بشه برد. دو اینکه تمام این تشکیلات حکومت و حکرانی برای تعالی این انسان داره شکل میگیره و یک حکران یک بود بزرگی از جامعه هست و سوم من اینکه بین حکران و حاکم که ما اینجا میگیم ولی الهی هست که وحدتی داره رخ میدهد که مشروعیت اون حکران از جهت از طرف حاکم داره تنفیز میشه به اون اعتام میشه و در واقع در داره انگار جای اون عمل میکنه لذا حکران اصلا یک جایگاه خیلی ویژه ای دارد روشش، منشش و مدلی که داره پیش می‌ره و انجام میگه درسته که ما با این حرف نفی نمیکنی جایگاه علب و نظام و سازکار رو هم و ساخته ولی می‌گیم این هم یک جایگاه خیلی, خیلی خاصی داره. خیلی برشته تشکیم تشکیم تشکیم خواستیم برای برا صورت کلی خواهم اشاره دید داشته باشم در بحث عباد و عباد خان و خوکمرانی یه تقسیم مندی سگانهی داشتن برادر عزیزمون حاجای بوسو ازاده یک بصد که تقسیم داشتم یک بود عباد و خوکمران و توضیحاتی هم که برادر عزیزمون دکتر مزاهری هم ارای دادن تو طور بصد که تفاوت اصلی حکمران در این نظریه دیدگاه اسلامی این که یک شخصی دارای روح و بسیار اثر گذاره برخلاف سیستم غربی که یک فرد موجری صرفه و این جایگاه معنوی داره و این نگرش معنویش تاثیر داره و میتونه هدف حکومت را که بهمنظور تعالی بشر هستش کمک کنه تصویر ببخشه و این وحدت رابطه ای که به این حکران و حاکم داره برقرار میجه و مشروعیت اون به حاکم هسته و مسئله بعدی که اشاره داشتن بحث علبوخان نظامات و سازوکارها بود که تعریفاتی رو ارائه دادن ناظر به این که نقشه راهی مرادشون از اولگو بحث نقشه راه حرکت کلی انقلاب که ون گذاری و سنت های پیشرفت های مختلف رو در این فضا تعریف کردند نظامات های ارکانهای دینی فرهنگی سیاسی و در بحث سازوکارها فرایندهای اجرایی که باید برای تحقق این سیاست های با روح اسلامی محقق بشه مثل اینکه قرار نیست با هر اصطلاحاً طریقی به اون هدف برسیم و مختلف و مرحله دومی سوم که بس نهادها و ساختارها رو داشتند که وظیفه‌ای که برای نهادها تعریف کردن این هستش که الغا کنند مفاهیم جدید در جامعه رو باید باشن و در ادامه بس ساختارها رو که معطوف ساختار ساختارهای دولتی ترسیم کردن و فرمودند که دولت هم تو مراد ما هست هر مسبقه مجلعه هستش کلی قوای و نهادهای رحلی مختلفو در و دوسر رو به عبارتی علوان نظام آبتاز و باقا رو وجود حکمران مطلوب دولت اسلامی ترسیم کردن تشکر شکر میکنم برای در اون عزیز با تقریبای مفید مختصری که داشتن در خدمت استاد عزیز سرور ارزمند زناب آقای حجات خسامن مستانی آقای دکتر گیرامی پر زساتید سطور آلی و حوزه اینی هستیم در خدمتون باشیم هاش می کنم اصلاح بی کنیم بسم الله الرحمن الرحیم خب من افتادا طبقی که می‌کنم میکنم فرارسیدن ایام دهی و همچنین ماه رجب رو خدمت همه سروران حجمند همچنین تشکر میکنم از سروران حجمند بابت در واقع خوبشون و موضوع خوبی که انتخاب کردم خب برهاب اکرانی از اون مفاهیمی نیست که تازه مطرح شده نو هست تو ادبیات علمی کشور ما هنوز انقدر سابقه ای نداره طبیعتا پژوهش تو این عرصه مشکلات خاص خودش رو داره و از طرف دیگه خود موضوع حکرانی جز نیازهای انقلاب اسلامی. در واقع خیلی از مسائل و مشکلاتی که ما الان توی کشور داریم حاصله حکمرانی نداشتن تو برخی از عرصه ها هستش عنوان نمونه شما ببینید تو این اختشاشات خوب واضح شد که ما در عرصه فضای مجازی حکمرانی نداریم این خسارات خوب زیادی رو برای جامعه ما ایجاد کرد اگر ما حکمرانی در فضای مجازی داشتیم طبیعتا دشمن نمیتونست نفوز کنه و خلاصه خزینه بار بکنه بر انقلاب اسلامی. این یه مطلب باز از های این تحقیق بود. به هر حال اینکه از منظر رهبری، رهبر معظم انقلاب کسی که به هر حال پیش از چهل سال تجربه بینظیر شاید میشه بین زیر در تاریخ اسلامی همچین تجربه‌ای رو ایشون تو بحث رهبری دارن. طبیعتاً رهنماهای ایشون وی این موضوع خب قابل بررسیست و باید محور قرار بگیره خلا حال حقیرم این نکاتی به ذهنم رسیده انشالله بتونم بتونه در ارتقاء این کاری که شما شروع کردید بتونه تحصیل گذار باشه من اشکالاتم رو در واقع تو دو محور قرار میدم. یه محور این متنی رو که شما زحمت کشیدید برای من ارسال کردید میرو یه مقدار تو مرحله اول محور قرار میدم تو مرحله دوم خب یک چیزای نکاتی که عجیب به ذهنم میرسه که بتونه شاید بتونه این تحقیق رو در واقع غنی‌تر بکونه خدمتون خدمتتون عرض میکنم البته توضیحاتی که سروران ارجمند فرمودن خیلی غنی‌تر بود از این نوشته ای که به دست من رسید خب نوشته در واقع تفاوت داره الان نه تفاوت بنیادی ولی خب اون چیزی که ارائه شد خیلی بهتر از این متنی بود که ارائه داده شده بود به سوال مهم اینجا وجود داره حالا من از کردم محور اول اشکالات من مربوط به این متن یه ای سوال مهم وجود داره که این تعریف حکرانی اجزا و شرایط اون آیا به صورت مجزا در کلام رهبری اومده یعنی حضرت آقا آیا در یک فاس کنید سخنرانی نشستی منحصرا به بحث حکمرانی پرداختن و تعریف بکنن اجزایشو بگن خب طبیعتا نه همچنین سخنرانی ما نداریم آیا این بوده که طبیعتا نیست طبعاً شما وری کردید یا اینکه نه محور کار شما این بوده که بیاید مثلا ببینید که حکمرانی توی ادبیات سیاستمداران معاصر ما به چه معنا استش. بعد بیایید اون رو در واقع با بیانات به صورت تطبیقی با بیانات از اطاقا مقایست کنید حالا در نهایت نظری از اطاقا رو استخراج بکنید تو این زمین اما تو مقدمه که شما شروع می ما تعریفی نمی بینیم یعنی من برام مشخص نشد این تعریف که از اطاقا که نیست شما رفرنسی هم ندادید که مشخص بشه این تعریف از کجا گرفته شده ببین شما اومدید گفتید حکرانی از دو تا واژه حوک و راندن هست بعد استناد دارید به قرآن یه دفعه گفتید در نتیجه این در نتیجه که اصلا غلطه شما قبلش چیزی نبوده که بخواید نتیجه بگیرید گفتید در نتیجه حکرانی یعنی فرایند اید پروری، تنظیم تنظیم برنامه و اعمال قدرت برای اجرای آن برنامه در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر که در لایه‌های مختلف حکومتی انجام می شود من متوجه حالا اگر شاد رفرنس ندادید ولی خب مشخص نشود این طرفی از اصطلاقا نیست اما از کیه اینم رفرنس ندادید که ما ببینیم با کی دارید شما این رو می‌سنجید باز در ادامه من مشخص نشد برام که مثلا نوشید در حکمرانی ایده ایده‌ها همان مفاهیم کارساز از دین برنامه‌های راه است که از قرآن سنت و دین گرفته شده است یعنی این غیر از قرآن و سنته نمیدونم این مت از شماست یا از کسی دیگه است حالا نمیخوام خیلی ملا لغتی بیان, بیان, بیان های کلمه کلمه دست بذاریم ولی خب این مطلب وجود داشت ارز کنم خدمت شما باز یه اشکالی که انشالله به نظرم یادتون کاری که قراره تو ادامه انجام بشه بحث روشه در حال شما میخوایید نظری آقا رو در مورد قدرانی استخراج کنید طبیعتا باید روشتون رو بگید از چه راهی این جوری کار که دست آدم میاد حس بدی با آدم دست میده احساس میکنه این کار کار کلید واژه‌ایه و کار کلید تو کارهای حضرت آقا آفته یعنی ما کلید واژه بدیم بعد یه چند تا فیش بیاد بعد اینا رو یه جوری به هم مرتبط کنیم این جز اون آسیب‌های پژوهش در آثار حضرت آقا هستش که تو برخی از این استناداتی که دارید متاسفانه این ملاحظه میشه بعد شما یه نکته هم باید به نظرم پاسخ بید. آیا واجه حکمرانی اگر ما با صورت کلید واجهی واجه حکمرانی رو توی آثار آسرچ سرچ کردیم حالا یک سری فیش به ما دار. آیا این حکمرانی در آثار آقا تا نعلو نل بنل همیشه این حکمرانی استلاحیه یا اینکه نه این خودفرانی ممکنه بعضی جاها ها معنی لغوی داشته باشه چون ببینیم من بعضی جاها هم شغی مثلا شما بحث خودفرانی رو مطرح کردید توی حالا صفحه بندی هم نداره این نوشته که من دادید بگم کدوم صفحه اما عرض کنم من یاد کردم شما اومدید وقتی بسقلاه به تعبیری بيانات عزت آقا رو آوردید توی عبارت شما و عبارت آقا حکران اومده کارگزار اومده مسئولم اومده این سه تا واژه به یک معنا لزوما هر مسئولی حکران هستش خب طبیعتاً اینطوری نیست پس این به نظر من یه آفتیه کنید شما شماتون بحث همون حکرانان وقتی بحث حکرانی رو مطرح کردید بعد عباراتی رو از آقا وردید مثلا استناد که از و مجموعه مسئولان نظام باعث خودشون رو از این روش ها و منش و خلقیات و رفتارهای غیر اسلامی خلاص کنن و نجات دهن این مسئول همون کارگزاره به نظر نمیاد که اینجا این مسئول تابقه هم نعلو به نعله اون باشه یا بعضی از استنادات خب این در واقع خیلی دقیق نیست یعنی شما ببینید تو اون ب نهادها و ساختارها خب اولا که تعریف که نکردید نهاد تعریف نکردید ساختار رو تعریف نکردید توضیح ندادید حالا یا تعریف از بیرون یا تعریفی که خود از عطا داد خلاص خب این مشخص نیست شما میتونید نهاد و ساختارا گفتید چی گفتید آخرین بخش از ابعاد قدرانی مربوط به نهادها و ساختاراست خب البته این آخرین بخش نیست حالا من عرض می کنم خدمتتون بعد یه توضیح دادید گفتید که خب بله نهادسازی از جمله ضرورت های بوده و باید بر اساس معارف پشتیبان یا ایدای اصلی حکرانی نهادسازی آن هم به صورت اسلامی صورت بگید قبلا از که نهادسازی رو تعریف کنید به صورت کلی گفتید که باید معارف پشتیبان داشته باشه بعد ببینید شما استنادی که دادید یعنی اون بیانی که از حضرت آقا آوردید گفتید یکی از چیزهایی که در حرکت عمومی و در هر نسل لازم است این است که بر اساس تفکرات و مبانی این نسل و این جران هم باید واجه سازی بود و تا انتهای در مورد واجه‌سازی شما اصلا در مورد سازی صحبت نکردید که حالا تو توضیحات شما بود شاید اونجا میخواستید بگید که آقا گفتید دو در واقع مواجهه وجود داره که بحث توسعه و پیشرفت هم مثال زدید و بله آقا تو این مفاهیمی که از غرب قائل به واجه سازی هستن میگن ما دقیقا نباید همون کلمات رو بیرون چون اون کلمات بارو و لوازم خودش رو داره ولی خب تو اینجا اصلا از واجه سازی صحبت نمیدی بعد تا انتهای آید یه چند تا نقطه میذارید میگید و همین طور است نهاد سازی یعنی این استناد اصلا به درد در واقع این تیکه نمیخوره و همچنین توی ساختار هم به همین شکل یه نکات دیگه هم هست توی صفحات قبل بله مثلا من بعض جان نوشتم اصلا استنادتون بی ربطه. یعنی ربطی نداره به اون مطلبی که داره ایر. میگم این تقویت میکنه یه خورده این در واقع تحلیل کلید واجه اگر یه تحلیل مضمونی به نظر من صورت گرفته بود طبیعتا یه همچین استناداتی داده نمیشد استنادات به نظر میاد که خیلی یعنی حرف زده شده یه اتنا مناسبتی استناد داده شده. حتی شاید من اشتباه میکنم و فهم اندکی خودم ورز میکنم این در مورد این مت، حالا تو نتیجه گیری هم دقیق میکنید خیلی ماحصل مشخصی دست آدم نمیگیره این نوشته از البته اون ای که دادشو خیلی بهتر مثلا شما تو اون اول فرموده بودید که حکرانی فراینده ولی آدم توی متن در واقع نوشته شما این فرایند بودن رو نمیبینه این یه اشکالاتی بود که به این متن وارده که من به عنوان پیشنهاد ارز میکنم حتما به نظرم یه بار باید در واقع یک تطبای خوبی انجام بشه باید تحلیل مضمونی انجام بشه در این رابطه حالا شاید هم انجام شده من خبر ندارم ولی این متن گویای این نیست یعنی بیشتر تقرید میکنه بحث تحقیق چیلی باجه اما من به نظرم میاد حالا این رو به عنوان پیشنهاد عرض میکنم من به نظرم میاد تو بحث بکرانی خب بکرانی از سیاست گذاری شروع میشه تا به انتها بیاد که تو کف جامعه این فرایند بودنش اینطوریه. دیگه یعنی از سیاست گذاری شروع میشه تا اینکه بیاد اون سیاست گذاری در واقع تنظیم بشه مثلا مقرراتی گذاشته بشه ساختارسازی بشه گفتمانسازی بشه مقررات بدن. انجامش رسد و ارزیابی بشه و در نهایت اگر قانون نقصی داره اصلاح بشه خب این یه فراینده و در نهایت این بیاد تو کف جامعه به صورت خدمت توی نظام جامعه نظام اسلامی به صورت یک خدمت به صلاح در اختیار مردم قرار بگیره من به نظرم اگر ما اینو خوب خوردش بکنیم یعنی اشکال اساسی بازیمت این بود که به نظر میاد این مد اومده حکرانی رو مساوی با سیاستگزاری و در نهایت یه ساختارسازی این نیست یعنی اگر قرار بود صرف سیاستگزاری و ساختارسازی و نهادسازی مشکل رو حل کنه که ما الان داریم یعنی ببینید تو همین فضای مجازی خب ما سیاستگزاری که داریم نهادش هم که داریم و خب چرا خب کار حل نمیشه چون خیلی از اون در واقع معلفه های دیگر را نداره ببین تو ایمت بیشتر از حتی یه ساز و اضافه کرده بودی توی اجرا خیلی پو... کم رنگ بود خودشون نشون نمیداد. ولی اگه مجموع این طی بشه اون حکمرانی که الان دقدقی در واقع اندیشمندان و, محستش... اندیشمندان و محستش توی محیطهای علمی اون محقق میشه و الا به صرف سیاست‌گذاری و نهادسازی و ساختارسازی مون در دق درغه برطرف نمیشه کمون که اینو الان هست. مگه بخوام خورد بکنم مثلا بگم کجاها ما میتونیم تو این ماجرا تتبع بکنیم حرفای آ رو بیاریم خیلی جوهای پررنگی هم داره. مثلا تو بحث مبانی شما خیلی مبانی رو کم رنگ آورده بودید. البته هشدار شدم تو بیاناتون بحث توحید محور بود اما تو مت نبود. تو این مد شما تو بحث مبانی فقط فکر میکنم بحث در واقع همراه بودن دین و سیاست را آورده بود اما خب اگر ما به مبانی آقا خب ما یک کاری رو توی دفتر نشه عزت آقا دوستان ما داریم انجام میدیم بحث منطقه عمل کردی یا الگوی تصمیم گیری حضرت آقاص خونجا خب اومدیم مبانی و امتدادهای مبانی رو آوردیم اهداف و آرمان ها رو آوردیم که شما اصلا به اهداف اشاره نکردید تو بحث نظام سازی بس اهداف خیلی مهمه دیگه بس اهداف خیلی بس اهداف اشاره بسیار مهم هستش حالا ممکنه این بحث اهداف اشاره یا به تعبیر اهل سنت اون بحث‌های مقاصدی توی استنباط حکم شرعی اونم مخصوصا حکم شرعی فر... فردی همون در واقع فردی خیلی تأثیر گذار ندار... نباشه ولی توی بحث های هست کنم حکمانی خیلی میتونه تأثیر گذار باشه اساسا اجتهاد آقا به سمتی هستش که به دنبال این هستش که ببین آقا هر حکمی کدوم هدف از اهداف شاره رو محقق میکنه مالاتون بحث مکتب شناسی هم که بود به این مطلبم به اشاره شد لذا به این ما بحث توحید رو داریم بحث توحید رو خیلی میشه پررنگ کرد ما از همین توحید شاید عرض کنم بیش از مثلا ده پونزده تا راه برد استخراج کردیم برای تصمیم گیری بحث تدابوم حیات پس از مرد بحث پیوستگی دنیا آخرت بحث حرکت عالم به بس، سمت جریان حق خیلی جزو اون مفاهیم پایی هستن جزو اون مفاهیم پایی هستن که خیلی از راه که آقا میفرماند مفتنی بر ها هست هستند حالال ما این رو دقیقا در آوردیم. بحث انسان محوری تویدی بحث استعداد بی پایان انسان خب ها و همچنین این مبانی یک سری امتدادهایی داره مثل عبودیت بودیت انصریلا که از ایتالیا بهش انشاره کردید هدف گرفتن تعالی انسان ترجیح فلاح اخروی بر سود دنیای بحث امید به پیروزی در همه شرایط خوبین خیلی مهم دوام مجاهدت فی سابیل الله این اندیش مقاومتی که شما فرمودید خب پیش برمیگرده به امتداد در واقع مبانی حضرت آقای که اون دوام مجاهدت فی سابیل الله هستش. یا باز به نظر میاد که تو بحث خبرانی اگر شما بخوایید به سمت مبانی برید بحث آرمان ها خب خیلی مهمه. تو اون خبرانی آرمان هایی که حضرت آقا حالاتون بیانی گام دقوم خب آقا 7 تا کنم اون 8 تا میفرمان که حالا یه رفاه رو هم میشه از سایر بیانات آقا اضافه کرد یعنی بحث معنویات عقلانیت عدالت اخلاق استقلال عزت آزادی برادری و رفاه اینها خب خیلی وابسته اون هدف نهایی که حیات طیبه هست خب خیلی مهم تو فرهنگ اسلام ما به دنبال این هستیم که تو عالم دنیا حیات طیبه ایجاد اینو حضران اسلامی میخواد ببره به سمت این که مسلمان تو جامعه اسلامی حیات طیبه داشته باشه حضرت آقا میگن حیات طیبه هم توش دنیا هست هم توش آخرت هست یه زندگی شیرین و پاکیزه که تأمین کننده سعادت اخروی باشه و همچنین تأمین کننده یه مادیات انسان باشه هم مادی هم مهندوی به نظرم خب از این تو بحث مبانی میتونید خیلی استفاده کنید خیلی مبانی لاغر بود به نظرم خیلی لاغر بود مبانی. یا حتی بله یا همون بحث ولایت مداری رو که مطرح کرده خب اون هم جز مبانیه اون هم خیلی میشه روشمان افتاد خب ببینید اون بحث حتی خب شما به این اشاره کردی اون نوع نگاهی که از اتها به ولایت داره اون پیوستگی پیوستگی امام و امت یعنی در امام با امت مردم با مردم از اون طرف مردم با امام خب این در واقع خیلی مهم است <تصفيق> که در واقع همین به نظرم هم اون سبک حکرانی رو توی فرض کنید حکرانی اسلامی مشخص میکنید مستحضر هست ما چند نوع در واقع سبک حکرانی داریم دیه اون سبک حکرانی هرمی هستش شبکهی هستش دقت میکنید بازاری هستش این دقیقا این شب... ولایت قشنگ مشخص میکنه که این ظاهراً بیشتر به شبکهی میخوره. یعنی وقتی ولایت در واقع اینطوری نیستش که امام اون بالای رأس هرم باشه از اون بالا دستور صادر بکنه نه این یک پیوستگی وجود داره که میبینید در واقع حاکم توی جامعه اسلامی هم حق داره هم تکلیف داره اینطوری نیست یه طرف باشه اون حب صادر کنه دیگران هم مبذفه به اجرا باشه ارس کنم خدمت شما که نکته یه بعدی به نظرم خب باید مشخص بشه اون روش در واقع حکرانی هستش که باید اونم مد نظر قرار بگیره به نظرم میاد اون بحث های اقلانیتی که تو بحث آقا مطرح هست توی بحث حکرانی از دیدگاه آقا پررنگ باشه اونم جزه مسائلی هستش و اقلانیت اسلامی که در واقع از اجتحاد آقا چون میدونید آقا منابش مناب استنباتش اینطوریه دیگه هم عقل هست هم عقل فلسفی هست هم عقل تجربی است و هم اشتحاد منطق اون اشتحادی که از رتها خود دارن اون خوش یه روشه یک متده که اون حالا توی فقه اختزایات خاص خودش رو داره تو هر عرصهی هم که میاد اصلش اشتحاده همین بونمایه همین اشتحاد سنتیست فقه است. ولی خب وقتی از عرصه فقه میاد بیرون اختزایات خاص خودش رو پیدا میکنه عرض کنم خدمت شما که باز مثلا چیزایی که اصول حکمرانی ببینید این اسمش خیلی متفاوزه شما بله قبل عرض کنم خدمت شما روش حکمرانی توی دقت کنید اندیشه آقا چه روشیه دقت کن. اون منبعی رو که آقا استفاده میکنه چیه خب ببینید فرض بفرمایید آقا توی غرب مثلا اون عقل خودونیات من بعد آیا اون یه آقا ما حالا اون باید به یک نظریه استخراج بشه که آیا اون در واقع روش حکرانی چیه که به نظر میاد که در واقع اون روش اقلانیت اسلامیه. اون اقلانیت اسلامی ما همه چی درش هست یعنی حالا به تعبیری میخوام بگم که اون اقلانیت اسلام اون اقلانیت خود بنیاد غرب نیست اون اقلانیت اس... اسلامی حالا من تبیرم من این هستش اون عقلی که در حیطه شریعت عقل رهانیست عقل انت اسلامی اون عقلی که در حیطه شریعت کار میکنه ولی عقل خود بنیاد اساسا شریعت رو از بین میبره همون اتفاقی که توی قرق افتاده. ارز کنم خب بعد ما بریم سراغ فرض کنید اصول حکرانی خب این اصول حکرانی جاش این بود که توی این بس بهش پرداخته میشد به نظرم سرخط های خوبی داره دیگه مثلا واس کنید تو این واس کنید اندیشه از اوقا تو باب حکرانی این مشارکت مشارکته اکثری چه نقشی داره چرا اون از عزت آقا رو مشارکته حد اکثری تمرکز داره بحث مدیریت جهادی هست بحث استقلال و عزت ملی است بحث تمدن ببینید خب اگر مستسر تو این اندیشه در واقع تو این بیانیه گام دوم آقا جهتگیری چهل سال ساله آینده ما رو گذاشتن رو تمدن اسلام پس طبیعتاً یکی از اصول حکمرانی چیه این است که این حکمرانی ما به جهت ایجاد تمدن نوین اسلامی بره باز از عرصه‌هایی که الان به ذهنم رسید که که خیلی میشه روش کار کرد تو این زمینه که البته شما هم یه اشاراتی داشتید بحث علوم انسانی اسلامی که حالا آقا خیلی تاکید داره، خب اساساً خب یعنی باز کردنش خیلی زمان میبره فکر کنم وقتم هم تموم شده ولی در هر صورت اون بحث های نحادسازی و ساختار سازی و اینجور مسائلی که میگه خب نهادها رو شما اینجا گفته بودید مثلا نهاد تربیت، نهاد اقتصاد خب این نهاد اقتصاد بعد چطور تولید بشه ایده از آقا چیه اون ایده اسلامی سازی علوم انسانی و روشی که هزت آقا توی علوم انسانی دارن که به نظرم دنبال کنید یعنی آقا تو بحث علوم انسانی خیلی حرف داره علا این که بعضی فکر میکنم ما حالا تو دفتر نشد حدود 300 و خوردهش ساعت و تا رساله مسبب کردیم سه و چار در مورد ایده آقا در مورد علوم انسانی در واقع مشکل اساسی یکی از مشکلات اساسی که ما الان تو حکمرانی رانی داریم و درگیرش هستیم بس ظرف ما در علوم انسانی است یعنی در واقع تو کشور ما چون علوم انسانی غربی داره در واقع سلطنت می کند ما تو اوکرانی دچار مشکل هستیم رو به نظرم باز جز اون قسمت هایی هستش که میشه توی بحث اوکرانی از دید و حضرت آقا پررنگش کرد ببخشی که بخورده خیلی بیش از حد ما صحبت کردیم. خراسه شخشقه هایی بود که به ذهن نا. ما رسید گفتیم بلکه به درد بستان عزیز بخوره که بتونه این کار رو قنی کنه. واقعا خود میکنم سلامت باشید سلامت باشید جان وارا باشه بابت که که زحمت کشیدند وقتشون رو در اختیار دادن. من دادن استفاده کردیم حقاً من بین به خودم واقعا استفاده کردم از بیاناتتون چیزا دوستام عزیزمون استفاده کردم قطعا من یک تعریفی از بیانات شما داشتم و دوستان اگر مطلبی لازمه درختی که عزیز ازت کردن پاسخی بود استفاده میکنیم کردم و بعد از آن هم مگه خوزار از این سالی معی باشه هستیم در ابتدای بحث استاد بزرگوار آاد گران بود و عاد مثبت این پژوهش و سختی هایی که از باب نوبودن موضوع و کمبود منابع نسبت بهش وجود داشت اشاره کردن و نقطه مثبت دیگری که براش ت کردن اشاره به این بود که مطلب از منظر مابخامنهی متزل روح دادی داره خب اشکالات خودشون رو بحث امدش رو بر متن ارسالی قرار دادن و نکاتی رو در توباونش وارد داشت و در مطلب انتهایی نکات تکمیلی جهت قلی شدن پروجه تحقیق مذکور بود بعد در آتو بس اشکالات مدی چند مورد بود که آدم بندن اختصار جهت که دوستان در جریان بشن باشن و اگه مطلبی دارن اراعی دوستان اینشان کنم بحث این بود که اولا اشاره دوستان اراعی دوستان قویه ترت بود که و ولی که در تعریف حکمرانی به صورت دقیق اشاره نشد و تعریفی هم چه اشاره شده بود از از آقا نبود و مطلب بعدی که اشاره داشتن منابع ارجاعات متنی مسئله جاداش دیگه باشه و مطلب ثوم به روش تحقیق و پژوهش بود که فرمودن مشخص نبوده و با آسیبهای پجوهش که در رابطه با اندیشه امام خاملی پرداخته میشه رفعی پرداخته میشه که پژوهش‌های های که بود اشاره داشتن که از این برحضر داشتن که دوستان خدای نکده به این روچار نشن و اشاره داشتن این متن شما خوکمرانی رو مساوی سیاست کزایوی و ساختارسازی و نهاتزازی فرض کرده که در تعریف این نیست و و بالاتر از اینه و در بحث مبانی رو اشاره داشتید ونی در متن بیو کمبنگتر بود و اشاره به بعضی از اهداف احط... یعنی آرمان ها نشده بود که جا داشت اشاره بشه و به عوالتی باید امتداد مبانی بیشتر ترسیم بشه و نوع نگاه به ولایت و اشاره داشتیم که نگاه دقیقی هستش و جا داره تکمیل بشه انشاءالله و وقت سبک حکمانی رو که فرمودن که سبک حکمانی که بعد نظر به ذهنشون میسه در پروسیتم با, با ولایت سیستم شبکهی هستش که هم حاکم مثل مردم حقی دارد و هم تکلیفی که و, و در انتها هم بعض رویش های حکمانی که با مشخص بشه که رویش حکمانی از از آقا برامده از چه چیزی هستش که ایشون تکلیف داشتن که این رو برآمده از اقلانیت اسلامی می و جا داره بحثای اصول حکمانی و استقلال از با مسئله مختلف بیشتر اشاره بشه و این جهتگیری بحث و چه کمکی تو راستای وقت تحقید و تمدن اسلامی تمدن نوین اسلامی داره بیشتر باید تبیین بشه و راهگارهای ما و روی کردهای ما در جهت انشاءالله رسیدن به این مرحله تمدن سازی نوین اسلامی باشیم <تصحنت> تشکر میکنم سلام عزیز سلوار خیلی خیلی خیلی. خیلی خیلی. اگر مطلبی دارن عزیزان در ختمه چون خواهیم بود و او خواستم این را حتما میتخابه در زنسایی یک دفعه دوستان هم مطالبی که که همی پردارن رو به پرت این پاسخ کنم شما داری در خدمت شما باشیم پیایی یک دفعه پاسخ سآلات رو دخلیم بفرمون بیان رو صحابت های عزیزانی که این مطرق رو تحریف کردن و ایک از که من هم بسید هر بعد در زنیمه بیانات رو های کار بشه جانبی دینی ما و موزه ما برای کنت خواست خودشون دارید این در این زمین وجود داریم. این یکی از محاسم خیلی خوبه هست که بندر رو کشونگه که بیان مستمه صحبت های یعنی عدیدان باشه. اما دو نفته رو اندازه مطالی که خرمیدن در و هست رو ما دو تا نکته تو دول آیان به نظر رویستیم که شاید واضح باشه بیشتر هر همیشه می کنید که, که حکمرانی در باره که الان وجود داره این نوع حکمرانی سردخت اسلامی نیست به نوع کلا التغاطی می کنید به دین این نوع که الان مشکول نیست خیلی بعد من که این رو به صورت این رو ترمیشه آقا باید به طرف اسلامی شدن سوق دارد این سالمانی که این نحوه حرکت یا نحوه پسندن این مفهوم حکنورانی یعنی این مفهوم وجود داری تابطیق اسلامی چه صورت راه هایی و چه اولمانو فرایندی داره یکی این یکی در زمین بخشی به این حکمرانی مشروعیت دادن یا مشروع بودن این نوع نقش مردم کجاست؟ آیا مردم توی مشروعیت دخشی به این نوع نقش نقشی دارن یا نه؟ سبتم در زمین اجرا نقششون خواست میشه. ممنون هستیم سآلاتی که پرسیدید بکنم بعضی از این مطلب ها بشاره داشتند دوستان تو بیانت شما در خدمت مصمی محضبه باشه باز خب خاص در خدمت شما سر بارونه اتمند بفرمیم دوست از رای که مطلب ملاحظه فهم بودم و ما واقعا هم فرز بود که توفیق بشه انشالله یه نقطه شروعی بشه روی این بحث بتونیم پخته ترش بکنیم و بیشتر کار کنیم و خواهد ارائه تر خاشه و اینا نکاتی بودن که واقعا هم به بود حالا بعضی ای از این نکات رو پنده ارز میکنم رو رو و را قسمتی را مجایی هم نکات شما هم سوالی که از من فرمایدن در مورد روش من این نکته را از بکنم که خروجیش اینجوری دیده شده توی متن که رکته به سمت اینجوری که مثلا واژه سازی بشه اینی کلید واجه ای بخش و کلید واجه ای بشه این متن متاسفان این نکته رو داره یه جور شده که کلید واجه ای از صحبت آ استخراف شده و اگرن توی مطالعه و روش استخراج اینجوری نبوده یعنی سعی شده که هم به نحو محکمات و متشابهات بریم جلو یعنی بیان آقا در عزیز مفاید نومان و محکمات اشاره میشه همون همون اون همون نخواه که می فهم بودید مال دیدار 12.79 هسته همون مبانی و احتافوین ها بعد جا داره که این مرد هم حتما میده و خیلی خوب اشاره بشه و خب این ها ملاحظه شده یعنی این که این مبانی ملاحظه شده و اصطلاحاً ولی خروجیش آره یه هم حالتی پیدا کرده که رفته بسندیکی با جایی شدن و اجمالاً هم با روش تحلیل مضمون برقی از این پیش مشاهده شده ما مجموعه هم هست کتب دهکانه مکتب انگلاب اسلامی که از اونها هم اختباسی گرفته شده که خب اونها هم هم از این روش تحلیل مضمون استفاده کردن و هم از روش اومدات و تو بیان آقا ولی خب ما چون همین مفهوم حکمرانی رو و ابعاد و رایه اینا رو یکم مستقلیلن تو بایانا که آها با اون شکلی و برای تعریفش به یکم مشکلات می خوریم ولی برای خب بتونیم به اون مفهوم اصلی نزدیکش کنیم که بتونیم بهتر جواب بدهیم همچنین مسائل رو پیش میاد که این ها این تو ها این و این مسائل ان به و استفاده بکن. من این نکات که ارسال که کامل روش کردم که ان بتونیم رو اعمال کنیم و حالا به به وقت که از داشتید الله ی مژده که داشته روشن من همین میگم از اینکه می الله الرحمن الرحیم. الان تشکر میکنم از اون دقت نظر اینکرامی همین که وقت خیلی خوبی گذاشته بودن و مطالعه درگیه کرده بودن و اینجور نگاه ها و اینجور جلاسه باز میشه که کار به مرور پخته بشه هدفی که ما در ارائه این بحث باشتیم یه مقسم سمار داریم در مورد فرزان حکمرانی مثلا سیاسی حرف میزنیم یه موقع داریم در مورد حکمرانی اخلاقی حرف می‌زنیم. یه موغدی در مورد حکمرانی منابع انسانی حرف میزنیم یعنی در واقع داریم در مورد حکمرانی مضافی مطالب رو می‌چینم و می جلو. یه موغ نه حکرانی بدون اضافه بدون مضاف داریم بنای ما این بود که فعلا یک ساختمانی رو بنا بکنیم که توی این بنای ساختمانی ما بتونیم یواش یواش اون حکمرانیای مضاف رو درش اشراب بکنیم. لذا اینجا بالاخره یه مقداری اون دیدن قواعد کلی و کلان و چارچوبهای کلی ضرورت بیشتری پیدا میکنه و برخی از بحث‌ها که خردتر هستن و شاید ناظر رئیس یه حوزه ها هستن طبیعتا لازمه که بریم و توی سایر عنابه حکمرانی بریم اونها رو ببینیم و روش بحث بیشتری بکنیم. لذا ما سعی کنیم اینجا بیشتر یک ساختمانی بنا بکنیم. یعنی ما مثلا فرزن اون چیزی که مطرح شد گفتیم که این حکمرانی ما یه سری معارف پشتیبان داره این معارف پشتیبان دو تا قسم داره که این ها باز از سگمنت اصفهان هم از خود حرفای از تاغ بیا بیاریم. که یه سری معارف و مفاهیم بنیادینه که شامل همون مفاهیمی میشه مثل اخلاق گرایی مثل توحید بنده چند تا مثال خیلی کوتاه اصلا فرض یعنی دیگه باز میشه توی اون بحث‌ها و یکی در واقع مفاهیم راه بردی که باز اونها هم اتکا دارن ولی خب راه بردن و خیلی کلانن که مطرح شده اونجا مثلا مثالش از همین ت... در واقع ترکیب این مفاهیم و معارف راه بردی و بنیادی ما میرسیم به یه سری کاربردی که از دل این مفاهیم کاربردی ما تازه میخوایم یه پله بیاییم پایین تر برسیم به یه سیستاده کلی بعد بیایم پایین تر تازه از این به بعد تازه مفهوم و اوکرانی رو شکل میدیم معنی معنی پیدا میکنه مثلا الان اینا یکیش لازمه اوکرانی گرفتیم میگیم معرفه پشتیبان و همه این نظامی هم که چیده شده داریم میگیم که درکیه از مفهوم و نظام امتهای ممه یعنی همچی چیزیه اون چیزی که ما بهش رسیدیم که ما چطور تعریف بکنیم خود مفهوم اوکرانی رو جلسات این واسه داشته گوییم تضیه خب رسیم که با توجه به صحبت‌ها که از حضرت آقا داریم ما بموکرانیو فعلا بر اساس تعریف به تقسیم انجام بدیم نه جنس و فصلی نه که به مقدار ماهیتش مشخص بشه تعریف به تقسیم اینکه که گرفتیم سه بخش شد حکمرانی و سه بخش همش حاصل اون تعلیم مضمونه یه بخش شد روش و منش حکمران که استدلالیان که این رو جز اون قان یه بخش شد الگوها، نظامات و سازوکارها که بیشتر نقش فرایندی و سازوکاری حکرانی روش تحکید داشت یه بخش هم شد نهادها ها و ساختارها و روی این ها بیشتر اومده و تقسیم کردیم بحث حکرانی منطق خود حکرانی خود لغت حکرانی حتی اینکه این لغت چطوری به کار رفته توی ادبیات حضرت و چه معنای داشته هم جدای که یه تحقیق کار شده که سیر استفاده از لغت حکر تو ادبیات از نگاهی سری بوده از منفیه به مثبت تو دهه های ابتدای انقلاب وقتی داره میگن حکمرانی مد نظرش حکمرانی شاهه یعنی اینه کاملا منفیه یعنی بار معنایی کاملا منفیه بعد توی مثلا شاید الان دهه‌ی خاطرم نیست ولی خب شاید مثلا سال 80 خورده به بعد یواشواش این واژه حکمرانی داره خنسا به کار میره تو ادبیات از دا و توی اخیر توی چند که پیشش هم جه اومده که مثلا بوکرانی ما قرآنیه و فلان کاملا مثبت میاد استفاده میشه و اون بحثی که بحث حوک در قرآن شده ما تقریبا تمامی آیات و تمامی مشتقات حکم رو در قران یه کار کردیم یعنی که تونستیم یه معنای جامعی از همه اینها بکشیم و آوردیم اون معنای جامعی ای که در آوردیم با فیش هایی که از تاوا واژه حوک حکومت و حکرانی مثبت به کار بردن اونها تطبیق دادیم. چنیم چه قد این, این فهم مواسعات رو آقا تطبیق می کنه. تازه این این تحقیقاتی که به عنوان پشتیبان الپ ال انجام شده تا رسیده شده به این مسئله یک چالش جدی هم که ما مواجه بودیم خب واقعا از دایره مورد حکوانی حتی مثلا چند تا فیش به معنایی که ما بیشتر نداره. ما چند تا مفهوم رو گذاشتیم جلومون که توی دایره معنایی حکوانی قرار داشتن. مثلا مسئولین که اشاره کرد کارگزار، حکومت، دولت و حتی مثلاً نهادها بazen که مخالف مثلاً دیداره هایی که از دعوا در مورد رابطه نهادی و سازمانی صحبت دارن که اونجا میاد چون مگر شما نهادی، سازمانی چی بتوانیم پردازیم؟ و گفتیم نه این از نو به نیم کجاها صحبت آقا دستوری که دادن اون برداشتی که ما میتونیم بکنیم؟ آیا مثلا اونجا که گفته دولت باید در دستورمانه شه شیو که نسعود فقط میشه خصوصاً از یا نه میشه برداشت کرد که نه اونجا میشه رو کمک میاد به کار بوده باشه؟ ما اومدیم ببینیم به خیلی از اینها یه تزه قابل توجهشون راحت به راحتی میشه مناتش رو فهمید که اینها مراد که خب وازان هر حکرانی توی این ساختار نظام امت قرامی باید روش و منش اسلامی داشته باشه پس اینا به عنوان یک در واقع یه جاهایی از اون فیشا آوردیم و استفاده کردیم به جای توسعه و سریع به دولته اونطور داریم میگه که اقا ساختار دولت باید ویژگی داشته باشه نه خب معلومه که این بقیه ساختارها هم باید این فیژگی ها رو داشته باشه در مورد روش حکرانی یا منبع حکرانی که ارائه داشت فرمودی این هم حالا اینو رو این بحث بحث ولایت یعنی حکرانی ش... ش... نوع حکرانی ولایت که مطرح شد اون چیزی که ما میفهمیم از بحث روش حکرانی ولایت و شاید مثلا حتی توی این نبوده و داره کار می تمام نشده بحث این است که یک خود ولایت در واقع روح بخش به این نظام هست صرفا توی شکل نیست شاید یه جاهایی ما حتی هرمی هم داشته باشیم یه جاهایی تواصل به خود ولایت بسنم توی بحث فرض مثال دارم میگم الان دارم به داعتم میگم باید دقت بیشتری بشه ولی خب مثلا توی میروهی مسلم ولی اینجا اینکه جایگاه ولایت اینجا چه جوری هست چه شکلی پیدا می‌کنه ما در اینجا می‌گیم آ این معنابخش استن هویت بخش یک نظامی غیر از نظام‌های ساختاری شکلی که الان هست و این همون جایگاه خاص ولایت هست که دوش داره الان کار میشه یه مقداری و دومین ویژگی که ولایت داره به نظر ما که حالا یه فیشنگ از توای اجتماعی تمام دیوارهای حزیمونیه که میگن که شاخصه توضیح که امام شاخص چه چیزهایی اصایجا میگن شاخص اصلاح اعتقادی و اخلاقی مسئولین است. اینجا میگن شاخص فل امام کوینیو میگن شاخص ما داریم دوم اینجا ولایت توی حکمرانی بحث شاخص بودنشه. که این میاد شاخص ارزیابی ما میشه، شاخص فرایندی ما میشه. یعنی این یه جایگاه خاصی که را در نظر گرفته بشه. در مورد اهداف خب یه سری اهداف کلان داره حکمرانی که الان اینجا نشده تو متن هم نشده که اینا همون درآم برآمده و درآمده از اون معرف بنیادی نه اهداف کلیه که تعالی و سعادت و رسیدن می... یه سری اهداف که میخواد به خورد بشه مثلا میگم مثل حکرانی آب ما یا حکرانی معدن ما مثلا چی هدفش میگم آقا اینجا مثلا رساندن مثلا انفال به فلان یا مثلا عدالت اقتصادی یا مثلا اوکراینی فرزند مثلا دارم میگم به پرداختی ما باید چطور باشه فلان این اهداف متناسب با عدالت میاد خورد میشه مطمئن‌ترین چیزی که فهم داریم اینه که به طور کلی اگر که بخواید حکرانی رو بیاین و انجام بدیم برای یک جامعه دوچار یه مشکلی میشه. اونم این است که جامعه یک جامعه خیلی یک دستی نیست که همه یه شکل باشن، یه مدل باشن. شاید لازم باشه که برای طبقات مختلف حکمرانی مختلفی بیاین و صحبت بکنیم. اینو از چه طریقی در آوردین؟ وقتی مثلا از داغا میاد صحبت میکنه با تیفای مختلف اجتماعی نوع بیان نوع ایجاد انگیزه نوع مطالباش مثلا متفاوت میشه طبیعی طبیعیه مثلا یه جا مثلا داره هر از مثلا روی اومدن و مشارکت میزنه میگه اگر که دومال اسلامیسی، هستی ایران قدیمی هستید برای ایران دوییده اون فضا یه مخاطب خودشو داره ولی خب یک مدلی از در واقع ایجاد انگیزه است توی اجتماعی مدلی است مثلا میتونیم بریم فراهم بشیم میتونیم روش ایجاد کنیم یه جا میگه نه عوضیبه شهرعیه خب این بره یه طیف دیگه است اصلا یه مدل دیگه است یه فرایند دیگه است یکی این هست که حکرانی را داره شکل میده و منابع حکرانی ما که هم که حالا فرموید اعلانیت اسفلی متناسب با این ها به نظرم متفاوت داره میشه یعنی ما توی اون طیف مثلا فرزند عمومی و عرفی مثلا حالا نمیدونم اسمشو چی بذارم وقتی داریم از یک نو میخوایم یه هک داشته باشه اونجا باید از عقلانیت استفاده بکنیم یعنی غیر اسلامی نه نه اسلامی نه دارم میگم منابع اه. متفاوت میشه مثلا یک سطحی از عقلانیت اسلامی که مثلا شاید این سطح از عقلانیت اسلامی میاد تکیه می که میگه آقا دستاورد ما مثلا برای امید میاد تکیه می کنه و دستاورد ما لوله‌کشی آب برغده ولی همش تحت زیر مجموعه عقلانیت اسلامی یه جایی هم شاید منظور ثانیاً مثلاً دارم میگم ما شاید بیایم بالاتر بیایم فرض مثال دارم میگم که بریم توی بحث مثلاً محبت اسلامی تو رابطه امام و بیایم بالاتر مثلاً بیایم توی مفاهیمی که لزوماً ذیل عقلانیت قرار نمی گیرن شاید رابطه دارن همدیار رو تقویت میکنن مثلاً مثل مفهومی مثل محبت یا مثلا مفهومی مثل خرزن... محبت محبت غیر اسلامیه نه نه ما وقتی داریم مثلا حرف اقلانیت میزنیم اگه حرف بزنیم هر چیزی که ما می‌فهمیم عقلانی همه چیزی که ما می‌فهمیمون شاملش خواهد شد یعنی مفهوم عقلانیت اسلام یه مفهوم عامیه دقت بکن حالا جای بحث داره می طلبه یعنی اثر اثر اگه بخوام بگیم عقلانیت اسلام یعنی عقلانی چم می‌ذارین که اسلامی همه رو می گیره. می‌خوام بگیم که منبع اسلام مثلا بحثی که شما فرمودید ما نوشته بودیم آیات روایات در اسلام خب آیات روایات هم غیر از اسلامه این وقتی می‌خوام می‌گم همه رو شامل میشه چه جزئیه ما اصلا که فقط اینکه باید وقتی میخوایم رجوع کنیم به طبقات مختلف اجتماعی برای اعمال خوش‌روانی بیایم تعریفش بکنیم که ما اینجا باید, باید با چه سطحی از اولویت و یا چه سطحی از مفاهیم اسلامی اینجا باید اینجا باید این اعمال بشه یه جا باید بگیم ایران یه جا باید بگیم شریعتونه نه ولایت آقا باید بگه این اصلا اینجا عوض میشه اون فرایم میشه همین عرض خاصی نیست خیلی استفاده سلامت باشن شاید سلامت همین بحثی که میخواستم میگم که ما یه حکمرانی مردمی هم داریم که در واقع این حکمرانی مردمی یکی از این مضافه که باید روش بحث بشه و کار لازم داره یعنی اینکه حکمرانی مردمی خودش این مسئله و ما فعلا اصلا محل بحثمون همون ساختمان کلیه هم پرانی هست حضرت او خود تأکیدشون دوبست بینگان و دوبام هست از قبلا هم هست یعنی از ابتدا تیزه یعنی همون بحث مردم ساله دیگه شما مطرح کردید هر برد دارد. دارد حضرت آقا اصلا نظرشون و امام نظرشونه نظر که تمام اصلا اون مطور پیشران حد انقلاب تو همه عرصه ها مردم یعنی هر اتفاقی توی ملت بخواد توی کشور بخواد بیفته چه تو عرصه اقتصاد چه تو سیاست چه تو فرهنگ مردم باید حرکت بکنن خلال البته تو باینه که اومو تو بم حالت وا میفرما با محوریت جوان متحد انقلاب اون چه در ساختار حلقوی میانی که این در به رو در همین موتور محرک مردم هستند، موتور نیاز به حرکت دارن. یکی بعد اینا رو به حرکت وادار که اون بحث‌های حرق حلقوی میانی بره. اونجا مطرح ما از دو حیث می‌تونیم این مسئله واقع هست. ما میگیم. مردم در تمامی عرصه های حکرانی حضور باید داشته باشند یه موقع موضوع ما حکرانی مردمیه یه موقع میگیم نه ما باید برای ارتفاع مردمی یه حکرانی داشته باشیم نه سه تا مسئله میشید ما چکه ممنون از من سردار و آیتم جان. سلام خانم خلیلی هستم. سلام هستی از استاد گیانفرد سلام، از خدمت سلام خانم تشکر میکنم وقتی که در اختیار ما رو دادن ممنون بالاتر از تشکر که تشکر دیگه با مطالب ان طراوه متری تبعیت با 800000000